اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله وملائکته يصلون علی النبي یا ایھا الذين آمنوا علیه و تسلیما. و عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما مؤمنین و نمازگزاران حاضر در این مکان مقدس. جا دارد که از حضرت شیخ الاسلام بخاطر فرصتی که به من دادند تا در خصوص اهمیت بیمه اجتماعی چند دقیقه در خدمت شما نمازگزاران و مؤمنین باشند تشکر و گذاری نمایم. بنده شاوزهی هستم مدید صندوق بیمه اجتماعی روستانیان کشاورزان و اشاعر استان سیستان و بلوچستان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستانیان و اشایر که از چهار صندوق پاداش کشور و از دستگاههای زیر مجموعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نهاد تعمین کننده خدمات بیمه های اجتماعی مطلوب با امکان دسترسی آسان می باشد که در سال 84 به استناد مواد قانونی همچون اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تاکید دارد بیمه اجتماعی حقی همگانی و دولت مکلف است از محل بودجه عمومی و مشارکت مردم نسبت به بیمه نمودن کلی آهاد جامعه اقدام نماید بر اساس سند چشم بیست ساله نظام ابلاغی از سوی مقام و معظم رهبری به منظور جلوگیری از تبعیض و فقر و گسترش رفاه عمومی جامعه و همچنین سیاست‌های کلی برنامه‌های 5 ساله چهارم و پنجم توسعه که به گسترش و تعمیم بیمه‌های اجتماعی به خصوص برای روستاییان بشای تاکید دارد در پایان قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تعمیم اجتماعی با این نامه صندوق که بر تدوین و آن اشاره دارد تأمیم و گسترش بیمه های اجتماعی از برنامه های کلان و راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت محترم تدبیر امید بوده و روی کرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستان و شایر ارائه خدمات و حمایت‌ها از یک منظر اجتماعی با حفظ اکرامت, و منظر و حفظ اکرامت انسان هاست این صندوق با هدف برقراری عدالت اجتماعی کاهش فقر توضیح عادلانه درآمدها، جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستاییان به شهرها و بهبود وضع معیشد افراد بویژه روستای و حشایر عزیز و زحمتكش که نقش اساسی در توسعه و پیشرفت انسان پیشرفت استان و کشورمان دارند اقدام به نام نامنویسی و بیمه نمودن خانوارهای روستایی و اشایری نموده تا این عزیزان با آرامش خیال و آینده روشن به کار تلاش خود ادامه داده و از مزایای این صندوق که شامل پرداخت مستمری پیری یا همان بازنشستگی پرداخت مستمری از كار پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفا و نقل انتقال سوابق بیمهای بین این صندوق و سایر صندوقها میباشد با حفظ کرامت و منزلت بهرهمند گردد خدمات این صندوق روش جدیدی از های دولت محترم از مردم بویژه روستایان اشار و کشاورزان ساکن شهر و تا جوانان می باشد و همچنین گسترش این صندوق توسط دولت از اهداف کلان در برنامه ششم توسعه تحت عنوان بیمه فراگیر بوده که نشان از اهتمام و توجه جدی دولت به این مقوله اساسی ای دارد افرادی میتوانند به عضویت این صندوق درایند که دارای شرایط زیر باشند تمامی ساکنین روستاها یا مناطق عشایری کشاورزان ساکن شهرها تمامی ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت رانندگان حملو نقل بار و مسافر بین شهری ساکن در روستاها و شهرهای زیری بیست هزار نفر جمعیت کاشناسار نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعضای نظام دامپزشکی زنان سرپرست خانوار و مربیان آمد به شرت که تحت پوشش هیچ بیمه دیگری نباشند افراد و سرفرستان خانوار خانواده بالای سال سن و بدون در نظر گرفتن سقف حد اکثر سن میتوانند به منظور تضمین زندگی آینده خود و خانواده خیش با مراجعه به 150 کارگزاری فعال, فعال صندوق که در دهیاری ها، قاونیه دهیاران، قاونیه های عشایری، روستایی و یا بخشداریها مستقر مستقل میباشند نسبت به نام و بیمه نمودن خود براساس درآمد ماهیانه که اختیاری بوده با پرداخت حق بیمه به صورت سالیانه اقدام نمایند. از اضمکرات قابل توجه در این صندوق بیمه از فی حداکثر سن سرفراز خانوار بوده که افرادی که بالای 55 سال سن، افرادی که بالای 55 افراد بالای 55 سال را قادر می سازد تا از مزایا و خدمات این صندوق برای خود و افراد تحت تکفل خویش بهره‌مند گردند. لذا جوانان و افراد مستل جامعه هدف توانند از شرایط معین شده نهایت استفاده را برده و آینده زندگی خود را تضمین نمایند. چرا که مشخص نیست که شرط سنی برای افراد مستل در آینده وجود داشته باشد یا خیر. حق بیمه در صندوق بیمه اجتماعی که شاوردان درصا این و اشاهر 15 درصد بوده که 5 درصد آن توسط افراد بیمه شده و 10 درصد دیگر یعنی دو برابر آن به لحاظ کمک و حمایت از این قشر کش و مولد از سوی دولت تامین می‌گردد و سهم 5 درصد بیمه شده از حداقل مبلغ 150 هزار تومان تا حداقل 360 هزار تومان برای یک سال می باشد و بیمه شده موظف از هر سال جهت تمدید عضویت خود عضویت بیمه خود مراجع و حق بیمه را در مورد مقرر پرداخت نماید نکته مهم دیگر این که روستاین و اشعار عزیزی که در سالهای قبل به عضویت صندوق در آمده و وقع بیمه خود را پرداخت نمودند ولی در سالهای بعد یا در سال جاری نسبت به تمدید آن اقدام نکردند توصیب سفارش می شود در مورد ادامه بیمه خود نزد صندوق در اولین فرصت پیگیری و نسبت تمدید آن اقدام نموده تا خلالی در استفاده از مزایای صندوق برای آنان به وجود نیاید. لازم توضیع و یادآوری است که بیمه اجتماعی کشاورزان روستایان و عشایر با بیمه سلامت ایرانیان که محتص درمان خانوادهها است متفاوت بوده بدیم معنی که دفترچه های بیمه سلامت ویژه درمان و بیماری خانوارهاست ولی بیمه اجتماعی روستایان و عشاعر زندگی آینده خانوارها را از حیث بازنشستگی از کارافتادگی و فوت سرپرست خانوار تضمین کرده و با برقراری حداقل معیشت میتوانند زندگی, زندگی شرافتمندانی را داشته باشند با توجه به این جمله تعمل البرین برانگیزه حادثه خبر نمی کند. در دنیای امروز بیمه اجتماعی یک ضرورت اشتراب ناپذیر و شاخص شاخصهای توسعه بوده که نیاز از هر فردی که به فکر آینده خود و خانواده خیش است برای کاهش دغدغه‌های روحی و روانی خود بیمه امر مهم که سرسبزی، امید و آسودگی و آرامش خاطر را برای شما برناما نیاورد اهتمام ورزیده و وضعیت صندوق بیمه اجتماعی که شوابردن و اشعار دارید در دا افسوس روزها و سالهایی را که بیمه نبوده را نخورید با توجه به اینکه بیمه اجتماعی حقیس همگانی مدرون بر براساس قانون اساسی آن را از دولت مطالبه نموده و از صندوق نیز آماده پذیرش جامعه هدف که جمعیتی در حدود 323000 نفر 323000 هزار خانوار یعنی 51 درصد جمعیت واستان را شامل میشود بوده و بر اساس و مقررات مکلف به اجرای تعهدات خود در قبال بیمه شدگار میباشد به امید روزی که با اطلاع رسانی شما عزیزان بیمه اجتماعی خانوارهای ایرانی همانند های خودرو، بیمه محصولات کشاورزی و دامها به صورت یک فرهنگ و ضرورتی مهم آمده و همه ما با آن توجه ویژه‌ای داشته و در این طرح مهم و ملی مشارکت بیشتری بنماییم ان از وصله و توجهی که به این جانب نمودید کمال تشکر و سپاسگزاری را از شما نمازگزاران محترم دارم و السلام و رحمت الله و براته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين استفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوموا لله شهداء بالقسط ولا يجرم أنكم شنا أنو قوم إلا أن تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى الله رب الجد و عن كتاب بما نزل كرداست و أين بما دداست دا كأجر ما بين أعين من كتاب أسماني کلام رب العالمین توجه بکنیم در همه زمینها عادلاترین رهنمایی و بهترین راهنمایی را بما کرداست و همه مشکلات در زندگی نخواهیم داشت و از جمله این راهنمایهای زیبا و نورانی اجرای عدالت هست اللہ تعالی نتنها حاکمان دنیا را بلکه تک تک مارا مخاطب کرده است به اجرای عدالت و در نظر گرفتن عدالت در تمام سعونات زندگی و عدالت را اللہ تعالی یکی ازمی ورحای بلند و محورهای مهم در دین اسلام قرار داده بلکه این عدالت را الله رب عزت اج می ورهای مهم زندگی قرار داده است محور که خود رب العالمین به آن قائمان و خود رب العالمین عادلا و به عدالت قائمان و قران همین فرموده است شهدا الله انه لا اله الا هو و والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط الله قائم به عدل به اجرای عدالت و صفات مهم پروردگار توحید است که او شریک نداره و تنها معبود است و تنها خالق و مالک هست و قائم به قائقستی و قائم به عدل حمقارہائے فرماں بردار از عدل صورت می گران و از انصاف صورت می گران ہم در دنیا هم در آخرت اللہ رب الاول عزت به انصاف قائمان و به عدالت قائمان و به هیچ کسی اللہ ظلم نمی کنان اجحاف نمی کنان به کسی و در سوره الرحمن فرموده و السماع رفعها و وزع المیزان جلوتر ذکر قرآن هست که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان چه زیبا تعبیرا چه تعبیر زیبا کہ این تعبیر غیر از خود رب العالمین کسی نمی توانه چنان تعبیرات زیبا و جامع را بکار ببندد وہ فرماتے آسمانا بلند کردے اللہ تعالی و وضع المیزان و میزان گذاشته ترازوئے عدالا گذاشته است في تطوف المیزان والسماء رفعها و وضع المیزان اللہ في المیزان واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ ترازوی گذاشته است قدر اجرای ادالات ترازو بمانئے و وعالی اجرای عدالت هست اللہ تعالی چنان پلہائی عدالت را برابر کرده است و چنان انترازو را تنظیم کرده کہ عدالت بین اجرائی شواد لہذا اللہ عدالتا گزاشت دی و ان کے عدالت اجرائی سے و در حق و حقوق مردم کمی صورت نگیره و هیچ انسان حق کا شزایا نا شوات همانا اندازه کیو حق داره بی حق داده بیعو تعلق بگیره مسائل سیاسی و جریانائی سیاسی نباید سبب باشه که در اجرای عدالت کمی و قاستی صورت بگیره خودی و خودی, خودی و دور، خیشاواند و نزدیک و دور همه باید در اجرای عدالت همه برابر باشند و همینه اللہ تعالی فرموده در سوره مبارکه نشاء که ولو علا انفسه کم سما عدالت اجرا کنید ولو این که بر علی خودتون تمام بشه به نبودی خودتون، به نقصان خودتون و اجرای عدالت بر اعلی خود اینه کہ انسان اقرار کنه به حق اقرار بکنه به حقوق الناس اقرار بکنه به حقوق مردم و حقوق مردما پاعمال نکنه کنه حقوق مردما مخفی نکنه کنه و ولو این اجرای عدالت علی خود به ضرر خودت تو، ضرر والد مادر و پدر و نزدیکان باشه بزرر غنی باشه بزرر فقیر باشه شما نگاه نکنید که بزرر کی است اما اد ادالت اجرا کنه. چی با دستوری است و چه دستور پاک و مقدسی است ولهذا عزیزان من خود خودمان در اعمالمان باید ادالت اجرا کنید بین فرزندان من فرزن بین زنان آنهایی که در ازدواج خودشان زن‌های متعدد دارند بین اولاد سا و بین اولادکم حدیث آمده مساوات کنید بین فرزندان تو و فرزندان با یک چشم و یک نگاه نگاه کنید تا اینکه بغض پیدا نشود در میان فرزندان دشمنی پیدا نشود اگر ادالت اجرا بشه و انصاف اجرا به از عزیز دنیا امن میشه جامعه امن میشه همدلی پیدامیشه همگرایی پیدا میشه و ہم زبانی پیدا میشود همدلی و وحدت و انسجام از اجرای عدالت به وجود حیات. و وقت ما عدالت اجرا میکنیم انتظاره ما این داشته نا باشیم که اگر به نه فرد اندام بین جامعه من ما عدالتا نتوانستیم اجرا بکنیم انتظار داشتا نا باشید که پیدا بشه با هم محبت پیدا بشه لازمه سروران گرامی اخواتو همدلیو محبتو دوستی یعنی که عدالت بینیشون بسورت مساوی اجرا بشه و برابر اجرا بشه و این به هر حال با اتفاق همه اسلامی و همه مسلمین یکی مهم مهمه و یکی مهوره آی برترست و بزرگه و در هم اعتقاد من و منصفانه در عمل در اخلاق اخلاق, اخلاق عادلانه و عمل کرده عادلانه و اعتقاد معتدل امونه که قرآن رهنمائی کرده است قرآن بمهترین اعتقاد با اعتدال ات اعتقاد معتدلانا و عمل کار و اخلاق و رفتارمون به بهترین رفتارมารانه راهنمایی کرد است در به هر حال جریان انتخابات هست و رد صلاحیت گسترده و واشی یک صورت گرفته به هر حال شاید بے صلاحت کسور نہ باشاد با تو موجب ہے دشمنان ما زیادہ وا دشمنان ہمہ ارزوئے انا دارند کہ مختار فاصلہ بین مردوب افتے و فاصلہ را بیشتر بکنو درمیان احاد جامعہ و جناhara بیشتر با هم تن بکنند و تفاوتهایی که موجود هست این بیشتر قرار بدان لحظا در شرایط قانونی و هر شرایط مهم هست که باید عزیزان ما که دستان در کاران و مخصوصا نشوره محترم نگه مان دوراندیشی بیشتر بکنه و نگاهش را وسیطر بکنه با به هر حل به نحوی رفتر بشه و عمل بشه با که دشمنان نتوانن سوی استفاده بکنن با هم اکیده من همان از که کسانه که نظام جمهوری اسلامی را قبول داران و اعتقاد به دارا قانون داران قانون را قبول داران نظام جمهوری اسلامی را قبول داران و لحذا اقلامی هستان بهرحال اقلام اغامل داران لازه اینا اگر شایستگی داشت باشان و دیگه شایستگی هم هست و دیگه ملاک هست حقی شنانه که نتایید سلاحیت بشان و ما توسیعی من دل سوزانه آمه قرازی ما نداریم و دل سوزیم دل سوزی نا توسیع بی کنیم شورا پہترم نگاوان را بینکه برحال در این برحاله بات کے احتمال هست که ادت حیداد دیگری رد تعیید صلاحیت بکنن نگاہ حسرا وصیب بکنن و قصانی که رد صلاحیت صدان اگر اصلحت الاباد که زنان خیلی رد سلاییتی کوستان دیگر انجام گرفته و اینها هم نزول جمهوری اسلامی را قبول دارند تا انجامی که ما احترام داریم و همچنان افرادی مستقلیان که مستقل آHAM رد صلاحیت ریات شود است لذا انشالله از اینها تایید می یا همه اینها تایید و انشالله این می توانی همدلی بیاورم و ملت بیشتر به سحنا بی کشه و دشمنان مهارا بیشتر میت و الاد مایوس بکنه مخصوصا در طیفه اصلا طلب انسان های شایستی وجود داره انسانه لائقی وجود داره و لحظ انها بکشور خدمت کرده مسیاری از انها انو افراده گتایید بشاید مجلس هم هرچه متنوع بشه و تنوع در مجلس وجود داشته باشه بیشتر مجلسا قویتر خواهد کرد و نشان بالندگی هر جامعه و هر ملت حاله که تیخه مختلف باشن درونها و تنوع درونها باشه تنوع مایه ترقی هست مایه کش رفته وما یه بالندگی هست مومد واریم که مجلسی آینده انشاءاللہ مجلسی باشی که باشه باشی وصاحبان نظر توی مجلس بیاد آدمان قوی بیاد وفرصت بیشتر برای صحبت نیس و توسیعی بنده همانی که همه بی قانون رجوع کنن و قانون رعایت کنن بہر حال قصانی کے اعتقاد دارن کہ با انها ظلم شده و رد صلاحیت شدن از طریق قانون وارد بشان برای ما برای همائی ما قانون حیاتی هاست اگر یک قانون دارن اشتبا وجود داشته باشه و قانون اسکلاتی هم داشت باشه از ان کے قانونی نباشه بہتر هست. ولی هزا قوانین مملكات قوانین کشور مراعات بشن و حرکات همه در چارچوب قانون انجام بگیره و جادارت که ك... ان لغو تحریم ها و شکست تحریم ها که اخیرا انجام گره یک يك... وغن موفقیت بزرگ برای کشور هاست و جادارت که ما بنده از جانب خودم و از جانب شما مردم عزیز وغان تشکر کنم از ریاست محترم جمهور جنب آقای روحانی و وزیر محترم قارجه شون جنب آقای زریف و تیم مذاکر کنندگا که وغان برای ملت ایران سربلندی آورداد این توافق و لغو تحریمها و بهرحال سکست توتیه سهیونستا و اسرائیل و کسانی که می خواستن توی منطقه جنگی بر ما تحمیل بکنن بر ملتی ایرانو الحمدللہ باییتو اخو همه چیز خونسا سود و تحریمها املاق سودان و دروازهای تجارتو و فعالان اقتصادو شرکتهاو همه باز شد بر کشور و بخش بزرگی از سرمایه های سروت های بلوک شده اما برگشت به بر کشور و داره بر میگرده این توفیق توفیق اهم میشت وغای جناب غیر روحانی ریاست محترم جمهور این تدبیرشون و تلاششون وعده ای که داده بود در ایم انتخابات یک فیروزی بزرگ هست برای شون بزرگ و همه این موحقیت تلاشها با مدیریت رحمل معزم انغلاب انجام و بهر حال الحمدللہ آینده احساس می که در اقسان دارم اللتی ایران هم اقتصادی وضعیت اقتصادی بہتر خواهد شد و هم از منطقه و جهانی. الحمدللہ وضعیت ملت ایران بهتر خواهد بود و موفقیت بزرگی برای ملت ایران در سطح دنیاست و روابط مارا و ارتباط مارا این مذاکره و گفتمان و موافقت در گفتمان با همه دنیا بیشتر می بی کنه و یعنی که ما توصیه من همیشه همینی که جنگ هیچ وقت راه حل نیست جنگی که الان در خواهر جاری هست این جنگ هیچ نتیجه برای هیچ کسی حمل داره بغیر از زائیات بغیر از بغیر از گرفتاری در دنیا و آخرت انسانا کستمیشن جوابی انها کمی دے انسانا گرسنا جوابی انها رکی میده ولحظا بہترین را مذاکره هست و حل سیاسی جریاناته چه در یمنه چه در عراقه و چه در عرص سوریه هست و آرزو ایمان که روابط اسلامی با هم خوب باشه و قصانه که روابط با ما قط کرده به هر حال مجدد برگرداد و روابط برقرار بشه اما کے که تلاشای هم در انجام بگیره و سرانه کشوره اسلامی با بیشی بشینا و رائحل پیدا بکنند برای مشکلات و اختلافاتی که در خاور مینه یا در هر جای دنیا ہے با رائح سیاسی و گفتمان و مذاکره مسائل حل بشان این بہترین صورت هاست و ان نشان دور اندیشیه و نشانه فیروزی ملت هاست و اندیشی ایک ملت هاست اللہ تعالی توفیق آیت فوق و همه مشکلات ها به مزرگی خودش حل بکنے وصلى الله صلى الله عليه وسلم الله